بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ولي وصحب أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي ما الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ستا اصلی که قرارا که تو این مدت بهش اشاره بشه یک شناخت خداوند بود که بهش پرداختیم و گفتیم بعدم شناخت دینش بود گفتی هرچند که باز دوباره خواهد اومد یک سری مسائل دیگه خواهیم گفت هر جایی به مناسبتش خواهیم گفت اون چیزی که مناسب اونجا باشه الان ما به طور مجمل داریم میگیم بعدن یکمی تفصیلش رو بیشتر می‌کنیم یکمی مفصل‌تر خواهیم گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم بنوان یک نبی بنوان یک رسول نبی هست و رسول هست ما چی باید بدونیم در بحث نبوت اولین چیزی که ما باید بدونیم در بحث نبوت اینه که انبیای خداوند خصوصاً به میجئه رسول الله علیه, صلی علیه و سلم صادق بودند خصوصاً رسول الله صلی الله علیه و سلم همه اونها صادق بودند پیامبران خدا و رسول الله صلی الله علیه وسلم همه اونها صادق بودن غیر ممکنه کسی بیاد ادعای رسالت بکنه ادعای پیغنبری بکنه سپس خداوند ایرا نابود نکنه این وعده خدابندیه در قرآن یا وعید اگه بخوام بگیم همونتک خدابند می فرماین تنزیل من رب العالمین كان زي من القران كان زي اللي نازل شو الله حي ولو تكول علينا بعض الاقاويل اتقرب بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقبلوا كلني دروب البنده افتراب ببنده حرفي بزني سخني بيجي كي ما نغفيم لا اخذنا منهم اليمين نبو الشدته ورا مغيرين شو كار ميكوني بالشدت ثم لقطعنا منهم الوتين غير قلب شفاره غير قردن قلب شفاره ميكوني يعني سر شو ميزان خوستان با شدت وقتی خداوند میگه لا اخذ منه بلی یعنی فما منکم من من احد عنه حاجز کثیری مانعین بشه جلو این قضیه رو بکیره دیگه مردنشو کشته شدنشو بگیره این بعدی حقه شما در تاریخ نگاه بکنید اون کسانی که از مسلمانهای کذاب و مختار صففی همشون با شمشیر کشته شدن همشون گردنشون زده شده هر کسی ادعای نبوت کرده کذابی عاقبت و, و نه شما در طول تاریخ نگاه بکنه چی این بوده شاید بعضی ها نسبت به این آیه شک ای داشته باشن این که رسول الله صلی الله علیه و آله سلم چنان در صحیح بخاری اومده میفرمایند لا ازل واشعر بقتاغری من ذلک الصوم الذي اكلته بخیبه من هم چنان احساس میکنم که یه گردم داره پاره میشه به خاطر اون سنی که در خیبر تا تعارض بین این حدیث آیه نیست تعارضی نیست چرا چون رسول الله علیه و آله اگر قرار بود رگ گردنش پاره بشه همون موقع خب پاره میشد رگ گردن پیامبر پاره نشد. به هر که اینجا ودین و ابهر دو تا رگ متفاوتی ولی خب بحث کشته شدنه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم داره بیان درد میکنه همچنان احساس اون درد و احساس اون سم رو میکنه احساس درد اون سم که در رگ گردنم هست. احساسش رو دارم میکنه آیا خون از ذهن پیامبر اومد؟ واقعاً جذنش پاره شد؟ خیر. همه میگه به سر اساساً وفاتش وفات طبیعی بود. واقعاً جذنش نکتی زاد، نبؤ سمم کشته شد. خیبر در چه سالی بود؟ هفتم. رسول در چه سالی وفات کرده؟ سال 11ام. تقریباً نزدیک به چهار سال فاصله است. اگر قرار بود با اون سم رسول حضرتنا کشته بشه همون موقع کشته میشد. بس رسول صلی الله علیه در در اثر اون سم کشته نشده. فقط رسول الله صلی اللہ علیه و سلم این حدیث بیان اون درد رو میکنه فقط برام بحثی که ما مطرح ما باید بدونیم اینی که اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول نبود، پیامبر نبود، صادق نبود، در اون هر حرف سخنش خداوند اون رو از بین میبرد بس ما باید بدونیم که پیامبران خداوند صادقند در اون حرفی که از سوی خداوند از طرف خداوند میزنن چی میخوان نبی باشن چی میخوان رسول باشن دینی رسالت و شریعت میخوان داشته بچن چی میخوان نبی باید اعتقاد داشته باشیم در پیامبرمون و همچنین در دیگر انبیای خداوند اینکه اخلاقشون نیک بوده حمدت که خداوند درباره رسول صلی الله علیه و آله میفرمایند انک عظیم اخلاقت خیلی بالاست نه تنها رسول الله صلی علیه و سلم همه قیام برن رفاده من. بعضی از کتاب هست کلمشو میلغزه اونجایی که بحث موسا میشه مثلا میگم موسا تنخو بوده کفره این تعبیر این توهین، اینو این لغزش کلم ما میگم اسمش لغزش شاید بعضی از کتاب شاید ندونن که چی دارن میگم به مجرد اینکه مثلا موسا سیلی میزنه به اون شخص ناخداغا شخص فوت میکنه بر اساس این فعل خشونتون اصلا بینه موسا خداوند در رسالتش به موسا علیه السلام دستور میده که با نرمی صحبت بکنه میگه میشه به موسا بگه بعد موسا ممتصل یا کسی نباشه که فرمامدار خداوند در اوامرش نباشه خدا بهش بگه این کار رو انجام بده بعد موسی علیه السلام انجام نده بیش بیگی فا الله و قول الله نه با فرعون مفتاری نر داشته باشه بعد بگیم که نه موسی تون بوده خیر در دعوتش در هدایت دادن مردم دعوتش نر بوده تمامی انبیای خدافن ما باید اینو باید داشته باشیم که اخلاق نیمی داشتن اخلاق نیمی داشتن و خداوند همیشه در قرآن مدفع ستایش انبیاش میکنه از آدم گرفته، نوح گرفته، ابراهیم خلیل الرحمن گرفته که اوصاف زیادی بهش میده از اقوام و از منیب و از حلیم بردوار و همچنین موسی و عیسی و دیگر انبیا که اسمشون در قرآن اومده اینو باید ما بدونیم اخلاقی بالایی داشتن یک شخص پرخاشگر، یک شخص بد اخلاق تندخو نبوده گفتم خصوصا رسول الله صلی الله علیه و سلم یک شخصی که کمال اخلاقی رو داشته و اینکه لعلا خلق عظیم بس صادق بودن از اخلاق بالای برپردار بودن این پیانبری که ما قبولش داریم خصوصا در صلی الله علیه وسلم عقل و خرد و درکشون کامل شده بود یک ناقص العقل نبودن کن ذهن و کن هوش نبودن اشخاصی که توان ذهنیشون درکشون فهمشون شعورشون خیلی بالا بوده اینو ما باید بپذیریم و اینو باید ایمان بهش داشته باشیم رشد عقلی داشته باشیم خداوند رسالتشو رو به یک شخص ناتوان عاجز نفهم یا بیشور نمیده بسه رسالت چیز سبخی نیست چیز سنگینیه که سنگی خداوند این مسئولیت را گذاشته بردوش اونها بردوش انبیه تا اینکه به مردم بگن بخاطر همین خداوند در قرآن وقتی که بحث رو میکنه و بحث انتخابشون میفرماین و من آبائهم و درریاتهم و اخوانهم از پیانبران خدا از پدرانشون و فرزندانشون و برادرانشون و از اونها اشتباه کردیم این انتخاب کردیم اصطفا کردیم برگزیدیم و اشتبهیناهم و هدیناهم الى صراط مستقیم پس اینها انتخاب شدن پیامبران خدا انتخاب شدن در توانشون، توان جسمیشون و خرد و عقلشون هم در اینکه روی هدایت بودن خودشون هدایت شده بودن و مردم را هم هدایت می دادن. این اوصافو داره می دید. رسول الله صلی الله علیه وسلم هادی هست مهدی هست هدایت می‌کنه، ارشاد می‌کنه. و خودش هم رسول الله صلی الله علیه وسلم روی راه هدایت بوده مستقیم بوده رو راه هدایت گمراه نبوده اینو باید اعتقاد داشته باشه اگر کسی بخواد خاطر توهینی بکنه به کل پیانبران گفتیم آیا عامه برای همه همه پیامبران استفا شده اگر کسی بیاد اینو نقد بکنه فکر بکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم حرفی نسنجیده داده حرفی نامناسب زده حرفی زده که یا اجتهادی کرده که مناسب دیگر ازمان نیست یا اشتباه کرده در فتوایش فتواش اشتباه بوده یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم حدی نبوده چونه هدایت یک راهه و انها در صراط مستقیما فتبع سراط مستقیم ما باید اعتقاد داشته باشیم کرسول الله صلی الله علیه و سلم صراط مستقیم را به ما نشون دادن و اون راهی که خلاف راه رسول الله باشه اون غیر صراط مستقیمه و ان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله راهی گمراهی را, را جنب است سبل گفت راها گفت ولی راه مستقیم یک راهی راهی که را رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما گفته چرا یک راه را قرار داده دا؟ چرا یک طریق را قرار داده دا؟ تا این که انسان مؤمن در شک نیفته در اون چیزی که بهش رسیده دچار تردید و شک نشد یقین داشته باشه که این راه حقه و ما باید بدونیم که تمامی انبیا با گفتیم و خصوصا و ببیشی رسول الله علیه صلی علیه و سلام رسولی بودن که اون چیزی که ما بهش نیاز داریم بهمون گفتن بدون کم همونطور تو که در صحیح مسلم اومده از رسول الله صلی الله علیه و سلام که می فرمین. تمامی پیامبران هر چیزی که نیاز قوامشون نیازمندش بودن گفتن و هر چیزی که بد بوده هم گفتن منم همینطور کوتاهی نکردم با خاطر همینی که خداوند در آخر حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیه نازل میکنه الیوم اتمت اللهكم دینكم دینو کامل کردم بر شما اینو با اعتقاد داشته باشید دین با وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم کامل شده و رسول الله صلی الله علیه و سلم بعثی رسالتش و بشارات و انزارش رو به نحو احسن انجام داده. رسولاً مبشرین و لالا يكون للنا على, اللا... على الله حجت حجتا بعد رسول. رسول و مبشر و منذر یعنی اینکه هشدار بدن و ما را گجدت بدن و به ما بشارت بدن از اون فادش های تا اینکه دیگه حجتی نباشه بهانه برای ما نباشه خیلی مسئله مهمه. رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم و دیگر انبیا بزر... یکی از بزرگترین نعمت هایی که خداوند بر سر ما گذاشته. یک نعمته با اونم نعمتی که هیچ نعمتی بلاتر از اون شاید نباشه بعد از رویت خدا بند و بهشت فردوس که بزرگترین نعمت‌ها ها هست در آخرت در این دنیا بزرگترین نعمت اسلامه و بزرگترین نعمت بعد از اسلام سنته همونطور که محمد رحمه الله میگه نمیدونم بر کدام یک از این دو نعمت شدگذار و سپاسگذار خدا باشم قرآن یا سنتش مسلمان بودنم یا مؤمن بودنم به اون قرآن و سنت خیلی بحث مهمیه که انسان پیانبر علیه السلام بپذیر با کمال اوصافش بپذیر در دینش در راه روشش منشش بپذیره خیلی مهمه الگوش باشه غیر از اون نعمت اسلام که انسان خدایی را بپجیره بنوان معبود خالق رسول الله رسول الله علیه وسلم در زندگیش قدوه ولگو و شخصی را قرار بده که بهش اقتدا بکنه منش خودش منش او قرار بده الگو باشه لقد کانه لکن فی رسوله حسنه. برای شما در بسودا ولگوی نیکی هست این گفتم یک جنبهش جنبه عظمت رسول صادق بودن کامل بودن از لحاظ عقلی از لحاظ خلقت و هدایت میدادند ما رو خودشون هم هادی بودن و ماها هم هدایت دهنده ماها هم بودن به سوی بهشت تا اینکه ما حجتی نداشته باشیم پیش خدا روز قیامت دیگه بهانه‌ای نداشته باشیم اینا چه چیز مسئله ازش درک میکنیم اینو درک میکنیم که خداوند ما رو همینطوری رها نکرده همونطور که قبلا داشتیم لم نه حمل بیهوده ما رو رها نکرده بلکه اتمام حجات کرده اتمام نعمت کرده اگر نعمت خلق رو بهمون داده این آفرینش نعمت هدایت و منشم بهمون داده اگر این نعمت خلق رو داده نعمت الروح هم بهمون داده الروح و روش را بهمون کامل یاد داده با فرستادن رسول الله علیه الصلاه والسلام. و السلام و دیگر انبیاش همشو اومدن که این راه راست را به سوی خداوند را بهمون یاد بدن این راه در این دنیا بعد از این نعمت چش و گوش و این نعمت بدن این بزرگترین بزرگواری نعمتش به خاطر همین یکی از نو ها یکی از کفران نعمت ها انکار رسالت پیامبرانه اینی که ما بگیم رسول نبودن پیامبر نبودن یا اینکه رسالت خودشونو به نحو احسن ادا نکرده و ما قدر الله حق قدره اذ قال ما انزل الله على بشر من شيء و ما قدر الله حق قدره یعنی اونطور که خداوند شایسته هست الله شایسته مکانتش هست اونطوری که خداوند شایسته جایگاهش هست جایگاهشو شایستگیشو به جا نیوردن شایسته این مقام خداوند منزلت خداوند را به جا نیورد چه موقع؟ وقتی گفتن که خداوند اتمام نعمت نکرده گفتن خداوند پیانبری نفرستاده حجتی را بر ما نفرستاده این نقضه کسی که بگه قرآن وجود نداره یا قرآن ناقصه یعنی خداوند اتمام حجت نکرد این ناشایستگی هست و ما قدر الله حتا قدره از قال ما انزل الله على بشر من شید. چه بگن خداوند نازل نکرده که حرف مشکینه چه بگن خداوند نازل کرده بعد نابودش کرده و گذاشته در علم غیب خودش که مردم هر کاری دلشون خواست انجام بدن غیر ممکنه بر خداوند این غیر ممکنه بر صفات خداوند خداوندی که هدایت کننده هست و پیانبران را برای هدایت رستاده بعد ما بگیم که نه ماها را هدایت نکرده راه هدایت را برای ما فراهم نکرده خیر رحمت و خداوند مشمول ماها بندگان شده و اتمام نعمت کرده بر ماها اگر خلق, خلق مون کرده راه روش هدایت رو بهشن به من نجات داده اینو ما بدونیم باید, باید یقین داشته باشیم اینو باید شناخت داشته باشیم هر مؤمنی باید شناخت داشته باشه اگر شخصی شک بکنه اگر شخصی شک بکنه در این اوصاف رسول الله صلی الله علیه و سلم اون شخص کافره اون شخص کافره ملحده داره جهود میکنه این آیات آیاتی که دلالت میده بر این که خداوند نعمت را بر سر ما گذاشته و حفظ کرده تا روز قیامت ما ذکر را نازل کردیم و اینه له لحافظون حافظش هم هستیم غیر ممکنه که قرآن قبل هم گفتیم قرآن حفظ شه معنای قرآن حفظ نشه غیر ممکنه غیر ممکنه خدا بگه اقیم و سرا بعد ما نداریم نماز بخونیم نداره. خیلی از گمرهان هستن میگن ما ملزم به قرآنی ملزم به سند نیستیم نماز که لازم نیست که سر سجده و رکرو بزنیم کافیه ک از داه یا گیتار یا هر چیزی که هست برداریم بیاد خدا بشو تو بهره خدا بریم لازم به سر بسجده گذاشتن نیست بله خیلی هستن ما دیدیم شنیدیم نه که فکر بکنید ما در عالب خیال صحبت میکنیم نه الگوشون ابن سیناست ابن سینا گفته که پیامبران با خیالات با مردم صحبت کردن بخاطر همین غزالی با وجود خودش متکلمه یعنی اهل کلامه اهل فلسفه هم هست، گویا که خودش تون در میکنه و فکر ابن سینا. دیگه من ابن سینا رو تکفیر میکنم از سه وجه. حالا هرچند گفتم الان این مساله اجتهادیه. حکم در یک شخصه. فکر نکنید که که داره ابن س... امام غزالی هر کسی تابعه ابن سیناشو داره تکفیر میکنه خیر. که این ایده هایی که داره خصوصا این ایده که پیامبران با خیالات صحبت کردن و خودشون حقیقت رو نگفتن میگه این نغزه. فارابی بهتر از این میگه میگه پیامبر خودشون هم نفهمیدن حقیقت رو نفهمیدن این نقض نقض اسلامه گفتم برداشت نکنید که ما داریم تکفیر میکنیم کنیم هرچند که بحث اینکه اینا مسلمون هستن یک مسئله دیگه هستن باید اثبات بشه برایمون اسلامشون چرا بعضیا میگن چطور میگه میشه ابن سینا فارابی مسلمان نباشن بله میشه همونطور که ائمه اهل سنت در قرن 5 6 7 هشتم تا عصر حاضر اتفاق و اجماع دارن حتی شیعش اجماع داره در کفر باطنیه شیعه باطنیه یعنی حتی شیعه اسماعشری جعفری اعتقاد داره شیعه هف امامی شیعه اسماعیلی کافره و ابن سینا فارابی جز باطنی بودن در مصر دولت باطنیه که اومد بس سلاح الدین و ایوبی اومد اون رو تارمار کرد نابودشون کرد اعتقاد داشتن حاکم به امر الله از دروزشون یه طرف نسریهشون طرف دیگه اعتقاد داشتن مثلا از نسریه ها که حاکم به امر الله خداست اعتقاد خدایی در بنده رو داشتن بودن از باطنی ها که اتعا... ات... ادعای خدایی رو کردن ادعایی اینکه که خداوند درشون اتحاد یافته به مرتبه فنا رسیدن اعتقاد فنا فرق داره با اعتقاد حلول ابن عربی و حلاج اعتقاد حلول دارم که خداوند مثل یک روحی در همه ماها ها حل شده. و استدلال میکنه به فرموده و من و فیهم من روحی. میگه روش خدا جزئی از ما هست. این اعتقاد حلولی هست. اخری اتحاد دیگه هست؟ اینکه افراد بتونن خودشون به مرتبه خدایی برسنن پله پله. خدا را در خودشون حل بکنن تا جایی که دیگه بین خالق و مخلوق هیچ تفاوتی نباشه. خودشون بشن خالق. خودشون تشریع بکنن دیگه مشروب دیگه معنا نداره دیگه زنا معنا نداره خیلی از غلاط صوفیه از اون تندروانی که به حد ابن عربی نکره و بدون علف علام میرسه میگه حتی سگم هم خدامه این اعتقاد حلوله بعضی ها مثل منصور حجال حلاج اتدعا میکنه که نه من به مرتبه فنا رسیدم خدا در من حل شده فرق داره من این مسئله بهتون میزنم که این مسئله واضحه بشه حلول مثل آبی که از طارت میده تو لیوان اینجا خودشون میگن لاحوت در ناسوت حل نشده لاحوتی چیز دیگه‌ست ناسوت یه چیز دیگه‌ست لاهود خدای آسمانی ناسوت خدای جسمانی میگن یعنی خدا خدای لاحوتی در ظرف ناسوتی مثل آبی که ریخته میشه اومده و قابل تفکیک هم هستن همونطور که خداوند از عیسی جدا شده، که ایسا کشته شد وقتی که عیسی کشته این اعتقاد در اثر فلسفه‌ی هند اومده در اصل اعتقاد نصارا این نبوده به مرور زمان با نشینی و فلسفه عوض شده اعتقاد اتحاد مثل اینه که نمکی توی آب بریزی لاهوت دیگه از ناسو جدا نمیشه خود شخص و خدا با هم دیگه فرقی نداره این چیزی که حلات میگفت این دو تا فقط از مذهب این که تشخیص بدید این دو تا فکر با هم تفاوت دارن هرچند که ما الان بحث بحث رسول و انبیا داریم میکنیم و بحث خصوصا رسول الله صلی الله علیه و سلم صادق بوده کمال جسمی و کمال فکری رو داشته هر دو تا با هم اینی که رسول الله صلی الله علیه سلم هدایت کننده بوده و خداوند این راه و روشی که ماها رو هدایت می هم حفظ کرده و ناشایسته است که ای بیاد این مقام این ادا ادایی که پیامبران کرده بر اون تعهدی که خدا بردوش اونها گذاشته بگن که اینها بر اساس اون تعهد خودشون عمل نکردن یا ناقص عمل کردن باید بگیم با اتن واج با کاملترین وجه عدا کردن تا اینکه در این آیه وارد نشیم و ما قدر الله حق قدره نقض کمال خداونده وقتی که ما نقد بکنیم اون انتخابش اون استفاش اون اشتباهش و اشتبایناهم و حدیناهم اشتباه کردیم یعنی انتخاب کردی استفا کردیم برگزیدیم برگزیده برگذیدیم یعنی انسان بیاد رو اون برگزیده شده خداوند انتقاد بکنه خیلی بر سر زبانها خسن زنا شاید راحت بیاد یک کلمه کفر رو بگن مثلا بعضی از کتاب و نویستندگان روشن فکر با قول خودشون هم میگن که واقعا منحرف میگن که رسول هم کیف دنیا شو هم راها نکرده خوشگزران بوده نوح دازن گرفته کفره. که ما بیام به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت خوشگذرانی تو دنیا بدیم. اومده که خوشگذران باشه، کیف دنیا رو بکنه، زنگ و بر خودش حلال بکنه، مباح بکنه، هر چقدر دوست داره ازواج بکنه. نفس انتخاب خداونده، پشت اینام. خداوند اشتباه کرده، انتخاب کرده، مدف ستایشش میکنه انک العاد قولک عظیم. بعد ما بیام بگیم که نه، یک شخص حواس بازی بوده. یعنی خداوند نتونست پیامبر خوبی را انتخاب بکنه چه فرقی داره که انسان بیاد رسالت را انکار بکنه کامل و بیاد برگزیده شده خداوند برای رسالت را انکار بکنه فرقی داره و ما قدر الله حق قدری از قالو ما انظر الله على بشر منشه وقتی گفتن خداوند بر بشری چیزی فرو نفرستاده وحی نازل نکرده فرقی داره کسی اینچین ادهایی بکنه و اون کسی که بگیت اصلا پیانبری نبوده اون منکر وحیه دیگری هم منکر ناقل وحیه حالا چه بخواد صفات نقص رو درش قبول داشته باشه چه بخواد بگیت اصلا من به عنوان پیانبری قبولش ندارم و باید بدونیم که پیانبران خداوند، اهل کرم اهل جود بودن دستاشون باز بوده بخیل و گدا نبودن این از اخلاقشون ها و خداوند هم مثال میزنه مثال میزنه در قران به ابراهیم علیه السلام وقتی که ملائکه اومدن چیکار کرد؟ کوسال رو به تمامیش سر برید و جلو مهموناش. رسول الله صلی الله علیه و سلم چنان که عایشه وضع میکنن دستاشو چنان باز بود که اگر بادی می اومد هر چی که در دستش بود میفرید. رسول الله صلی الله علیه و سلام قدسان میفرمودن نمیتونم بخوابم اگر مالی در منزلم باشه فقیر گرسنه بخوابه. وفا کرم به رسول الله علیه و کرم نه تنها در دادن مال دنیا کرم در اخلاقش اعرابی میاد یقه رسول الله صلی الله علیه و وسلم میگیره رسول الله صلی الله علیه و سنت چیزی از اعرابی خرید بکنه چنانچه در حدیث صحیح اومده خاص یه چیزی را خرید بکنه یقه رسول الله صلی الله علیه و میگیره صحابه میاد شبشراشو بیرو میان رو بزنن رهاش بکنی من قول رهاش بکنی من قول بهش دادم که این چیز رو ازش بخرم رسول الله میره دنبال میگرده میاد زعرای میگه ببخشید پولی نداشتم که پولی ندارم که من بیام بخرم دوباره یقشو میگیره صحابیان گردنشو بزنن سه بار تکرار میکنه تا اینکه یک از زنان او رسول الله صلی الله علیه و سلم میاد اون جنس اون ما رو میکرد بحثم اینه رسول الله صلی الله علیه و سلم تون بر مردی که اومد در مسجد و ظالب فی طائفه المسجد البوشی از مسجد ما در ارکان چگینی واسه برخورد کرد و اون شخصی چی گفت گفت که از خدا می‌خوام من و این شخص رو ببخش ولی بله اونها رو نبخش اونها که تون با هم برخور کرد کردن فجره و الناس همه صحابه‌ای که در مسجد بودن باش با هم با تندی برخورد کردن رسول الله نبود نر بود نه اینکه اثر رسول خشم می‌بردید بله همونطور که عایشه اگر حرامی انجام می‌شد رسول الله خشم می‌برد ناراحت می میگفت مشدور میگذره. خصوصا در پی خود به. ولی که نه در اخلاقش برخوردش است. خداوند با خاطر اینکه کمال وسیع رسول الله رضی الله علیه و سلم به همون بررسیه، به همون بگه چی میگه؟ میگه آبسا و ثعل لا ان جاءه الاعما. چی میخواد بگه؟ میخواد کمال اخلاق رسول الله رضی الله علیه و سلم به همون بررسیه. انتقاد میکنه کمال اخلاق رو میخواد بررسیه. بله. نابینا بود ندید خداوند میخواد بگه این نابینا اگر ندید با اون اخب کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم ما حاضر نیستیم که ازش بپذیریم یک اخب را از رسول در چهره نابینا که نمیبینه نمیپذیریم یعنی از باب اولا دیگر مسائلی که اخلاق برتر و اخلاق ویجهی که خداوند در نظر داره که میگوید این نکل علا خلق نعظیم خداوند میخواد ثابت بکنه. این چیزی هم از رسله صلله عليه وسلم سر نمیزدی هر ب وط اننجه و لحمال. این میخواد خداون کمال اخلاق رسله راصل الله عليه وسلم ثابت بکنه. اون نبیره دید میخواد بگه. از یک طرفی میخواد بگه خداوند که کردن هم یه نوع گناه از یک طرفی اینه اگر تو چهره مؤمن اخ کردی ناراحت شدی خشگین شدی بدون که بیجه مرتکب گناه شدی. و در مقابلشم اگر لبخندی زدی با بشاشت باش تغفت کردی و ابتسامت کفی وجه وجه اخی که لکه بیا صدقه اون همون لبخند برای صدقه ای هست و اینجا هم خداوند داره هشدار میده این کار نکنیم ای مؤمن این بحث بلا قبلن کردی المؤمن و اخو المؤمن این خوبت ایمانیه با... نه که تنها نه تنها این کرم اخلاق در اون لبخند زدن در اون خوب برخورد کردنه با مؤمن، حتی با کافر و مشرک الله اكبر. رسول الله صلی عليه علیه وسلم بچه یهودی فوت میشه میره به زیارت بچه ای بچه بگو که بگو لا اله الا محمد رسول الله پدرش حسد شش به پدرش میاندازه اون بچه بگم یا نگم پدرش میگه بگو میدونه چون رسول الله صلی اللہ علیه وسلم برحق به عیادت یک بچه یهودی یک بچه رفتن عیادتش یک طرف بحث خسار هدایت بشریت حتی اون بچه طرفی دیگر بحث این که اینها یهودند و این نیکی را در حطش انجام میده طرفی دیگر این کمال اخلاق کمال رفتار این کمال اخلاقی هست که ما باید بهش اعتقاد داشته باشیم در شناخت رسول الله صلی الله علیه و سلم و این که اینها غیر از این کلم اخلاقیشون افقی بودن تقویب بودن اون سه شخصی که اومدن یکیشون گفت من شبها قیام میکنم همش تحجد می دیگری گفت من روزه می دیگری گفت من ازدواج نمی رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفتون چه فرمودن به اون سه شخص فرمودن بیدینی افقا لیلا من با تقواترین شما هستم روز میگیرم و روز روزه, روزه نمیگیرم شب میخوابم و قیامم میخونم میخوای از من بهتر باشید منم ازدواج کردم فرمن راغب به بعد میگه فرمن راغب به عن سنتی فلیسم بینی کسی گه بکنه به سنت من از من نیست تهدید وارد میشه رسول الله صلی الله علیه وسلم متقی کرین بودن شبها وقتی که به قیام میستاد پاگاش برم میکرد قرمز میشد ولی بله این نشانه کمال اخلاق رسول الله علیه الصلا و با خداونده با خلقش یک طرف با الله طرف دیگه تقواشه رفتاره با خداوند خلق و خوی ما با خداوند در تقوا و پرهیزداری ماست اینی که ما از الله به مراقبتش داشته باشیم ها ما مرتبه احسان شک نداشته باشیم که پیامبران خداوند خصوصاً و ببیجه رسول الله صلی الله علیه و اخلاقش با خداوند در ترین اخلاق بود شب قیام لیثات البقره و آل و نساء در یک رکعت می تلاوت می‌کردن بله جهاد می‌کرده با نفس مالش رسول الله صلی الله علیه و سلم در ذکرش و تهجدش و قیامش و نمازهای سنت و راتبش و نماز فرضش خشوعش در نماز کسی نمیتونه به پای رسول الله برسه رسول الله صلی اللہ علیه و سلم احصص راحتی در نماز میت، ار احنا بهایا بلال این تقوای رسول الله علیه و سلم ولی ماها چطور چقدر خشوع داریم چند درصد خشوع داره اطقیان هستن و امنو هست امینن امین اماندار اون وحیی که خداوند بهشون داده تا این که مبلغش بشن و دارای فقه و فهم و گفتیم همونطور که گفتیم خرد و اون صفات که خداوند برزد اون صفاتی که از مشرکین سلب میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی ای هرچی از صفات نیت هست در بشریت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته از رشد فکری رشد عقلی رشد معنوی، رشد جسمی، همه ای اینها رو رسول صلی اللہ داشته غیر از اون وحیش و اون لازمی وحیش اینکه به راه راست هدایت میده و اینه که مستقیم بوده به راه حق و مردم را ارشاد میکرده به راه حق و انشاءالله همین بحث یک کمی ازش باقی میمونی برای جلسه بعد و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین و صلی الله علی محمد و حلی علی محمد